بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وخاتم النبيين واله وصحبه اجمعين اما بعد ابتدای ماه صفر سال هجری قمری 1445 افتتاحیه مجتمع علوم دینیه دار التوحید که اساس و بنیانش بر برپایی قران و سنت بوده به هدف خاص به قران در این وسان حبزش و فهمش نه منجرد حبس بلکه فهمیشم همین طور به خاطر اینکه فردا خوارج صفتی از این مدرسه فارق تحصیل نشن بیان قران رو با فهم خودشون تفسیر بکنن اینجا فهمه سلفمون صحابهمون تابعینمون و تابع تابعینمون اینجا برای ما مهمه اونها الگوی ما هستن اونها پیشوای ما هستن اونها بزرگان ما هستن فهم ما نباید مستقل از فهم باشه الله جل و علا فهم اونها رو قرار داده و بر اونها اتمام حجت کرده با اون قرآن سخن گفته و اونها هم فهمیدن و باره اینکه ما هم اتمام حجت بشیم باید قرآن را چنانچه اونها فهمیدن بفهمین قرآن هم فهمش آسونه هم حفظش آسونه این قرآن اگر بر کوهی نازل بشه کوه دگرگون میشه اگر این قرآن کسی بهش اعتقاد داشته باشه و اون را سلوحه زندگی خودش قرار بده این قرآن نجاتگرش خواهد شد در این دنیا و در آخرت روز قیامت شفاعتش میکنه در این دنیا هم اس خیرات و برکات الهی بر خودت خواهد شد. الله جل وعلا مرا فريده به خاطر عبادتش و شریف ترین عبادت چیه؟ فهم و شناخت کلام الله جل وعلا. تو چطور بخی نماز بخونی، روزه بگیری و قران الله رو نفهمی؟ نشناوی. جز اینی که ما من رو اول از قران میگیریم. وقتی که تو به دینت اهمیت دادی و سخن الله جل وعلا اهمیت دادی، یعنی عبادت الله رو برپا داشتی. تو سر خم الله جل وعلا و برای دینش. قران تو رو سر بلندت میکنه در آخرت تاج بر سر پدر مادر میذاریم ولی در این دنیا هم ما بر سر کسی تاج نمیذاریم کافیه که این قرآن شفاعت بندگانه چنانچه الله جل و علا بعده داده کافیه که الله جل و علا در این قرآن خیر و برکت قرار داده این قرآن مبارکه برکتش هم حسی هم معنایی هم حسیه هم معنایی والله ذکر الله جل و علا خیلی عجیبه ذکر یادا الله جل و از قرآنش چه از, از, از انسان کار صلی الله و سلم بهم یاد داده از اون تسبیحات، تحلیلات، تکبیرات فاطمه رضی الله عنا شکوایات میکنه، گلای می کنه میگه یا رسول الله تنم خسته، خادمی هم ندارم، خسته و کوفته میخوابم، یا رسول الله، چه هرامم خدمات میخواد، بچه‌امم خدمت میخواد، چطور خدمتشون بکنم با این تن و جان کوفته و خسته و مریض؟ برای رفع خستگی و درماندگی و مریضی و سستی چه توصیفی کرد رسول الله صلی الله علیه و آله به قبل از خواب تسبیح تحميد بگو سبحان الله الحمد لله الله اكبر سي وسبر سي وسبر 34 جاي انرجيزا رمي گيره چيزي نيست انرجيزا در مقابل اذكار ترا تراقي ميكنه قوي ميكنه ولي اعتقاد ولي چي اعتقاد شب خوابيدي من اين ذكر را بگم قوي بشم چون رسول الله ص اصلا گفته قوي ميشي ميشم نميشم نيازي게 به اسپرسو هست صبح اول خواب بیدار شدي نه اسپرسو چي بوده اذكارت شب خندي و الانم اون نشاط زنده است الان تو سکتورا زنده میکنه قرآن تو رو زنده میکنه مبارکه یک حدیث دیگه میگم در این باب اینکه انسان این غذا جای قوتش و آبش هم میگیره تو رو قدرت میده قوی میکنه و آب و غذا تام میشه رسول الله صلی الله علیه و سلم از نشانه های قیامت گفتن قبل از اینکه دجال ظهور بکنه خوشحالی میشه بارون نمیاد چند سال پیش سرم یک سال دو سال نمیاد بارون زمین خوش میشه حیوانا میمیرن صحابه گفتن خب چیکار کنیم بس میمیریم از خیر ابو غزاتون چیه تسبیح و تهلیل یعنی اون تسبیحات سبحان الله گفتنت اون ذکرت جوی اون آب اون غزا رو میگیره هر چه خوشطالیه اون کافر از تشنگی و از گرسنگی میمیره ولی مؤمن زنده میمونه چرا چون الله جل و علا قدرتش و توانش در چی قرار داده در اون ذکر و در اون تسبیحاتی که میگه قران تو رو زنده میکنه ذکر الله جل و علا تو رو زنده بذكر الله تطمئن القلوب و رامش میده زندگيته شكوفان ميكونه خلصاً چنانچه توسيه کرده و قفتاً چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم توسيه ميكونه اقرأ البقرة ابتدأي حديث چي بود؟ اقرأ الزهراوين زهراحس روشانوية درخشانه بطو درخشش ميده ميدرخشي درخشش مع نبيه و حسيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرموه منزليكه درش قرآن خلقه نميشه منزليكه جایی که درش قرآن خونده میشه، الله خیلی عجیبین. حدیث رسول الله صلی الله علیه و میگه فرشتگان، اون منزل درخشان روشن با چراغ قرآن روشن شده. حسی حسیم معنوی از اون آسمان ها میبیند. همون ستارگان که شما میبینید می, بینید می در آسمان. اون منزلی که درش قرآن خونده میشه درخشانه برای فرشتگان الله در آسمان ها. الله اکبر درخشش معنوی شد یا حسی؟ هر دوتا. میده درخشش. این درخشش گفتم تنها حسینی که فرشتگان فقط دارن میبینن بلکه معنوی هم هست خیره برکت مینان آرامشه در رزقت در روزی شکوفایی میشه در حفظه در فهمت در وقتت پس قرآن چنانچه رسول الله صلی الله علیه و سلم یاد میکنه خود سوره البقره و آل عمران چیه زهراوین شکوفاکننده هستن این دو تا سوره البقره و آل عمران سپس انتهای حدیثی فرمودن رسول الله الله علیه و سلم حدیث حفظ بشید حفظ بشيد رافتي بيرون الحديث راح يحفظكن اقرأوا البقرة اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة أخذها قرأتني بقرة بركت خير بركت شئ مثلا أب مبارك يك بركت شئ ك الله جل وعلا عليهم منزل من السماء مباركة أب مبارك يك زمین وسر سبز ميكونه وشكوفا ميكونه سورة البقره ذهن تو شکوفا میکنه حفظت تو شکوفا میکنه فهم تو شکوفا میکنه شکوفای فقط تنها در این معنایی است بلکه حتی در زندگیت خیر و برکت میوفته شیاطین جن ازت فرار میکنن و ترک حسد ترک کردی خودت به شیم ما آمیشی و من قرآن البقره لا يستطيع هو الباطل جهت قرار نمیتونند نزیکت بشن با اون جنیان که در اختیار دارن شیطان نمیتوند تو بسیب کنه اگر هم کسی بسیب بس بس بشه الله تو رو حفظ میکنه با آن سورة البقره بقره رو بخون بقره رو حفظ کن و این کلید را سخت ازش محافظت بکن تا اگه در حفظ و فهمت و در زندگی خیر و برکت بیفته و درهای رحمت بهت باز بشه و بتونی جلو و الله جل و علا سر بلند بشی این قرآن ترا سر بلند میکنه این قرآن ترا سرفراز میکنه در دنیا و آخرت خب بریم به عبوزحاق الویری کی هست؟ کجا بوده؟ کی به دنیا آمده؟ عبوزحاق از علمای اسپانیا اندلس سال سی تقریبا و, و به دنیا آمده یعنی هزار سال قبل هزار سال قبل مسلمان ها اسپانیا بله. بیش از هشت ست سال اونجا مهد علم بود مهد اسلام بود جا حکومت اسلامی بود پایگاهی از پایگاه های علم و مدارس دینی بود الان بله مساجه تبدیل به کلیسه ها شدن چون مسلمان ها نتونستن اونجا از اسلام دفاع کنن سال تقریبا 460 هجری قمنی هم وفاتی افتاد چون دقیق مشخصید ولی خب تقریبیه 375 دنیا بدن و 460 از دنیا رفتن در اون بره زمان هم خیلی از علماء بودن در دروری که ابو ساقه البیری بود از ابن حز گرفته و دیگر علمایی که بودن در اسپانیا خصوصا در شهرهایی همچون غرناطه و قرتبه که مشهور به مهد علم و دین و علمای زیادی از اون مدارسی که در غرناطه مقورتوبه بودن فارق تحصیل شده. حالا قورتوبه مثلا گفته میشه کوردوبا یا گرناته الان گفته میشه گرنادا مثلا و اونجا مدارس به زبان عربی بود. تدریس به زبان عربی بود. نوشتار به زبان عربی بود. اصالتاً هم بیشتر اون علمایی که در اونجا بروس کرده بودن و اهل کتابت و نوشتن بودن بیشترشون بیشترشون همشون بیشترشون اصالتاً عرب بودن. هجرت کرده بودن بعد از فتوحات اسلامی. مثل الان ملبری اصالتاً یمنی که هجرت کرده و بعد از فتوحات اسلامی اونجا مستقر شده اونجا شهرها و روستاها همه عرب بودن سلمان ها هجرت کرده بودن هم برای دعوت هم برای دنیاشو ابو اسحاق البیری معروف به ابراهیم ابن مسعود ابن سعد تجیبی ابراهیم ابن مسعود التجیبی از قبیله توجیبه یمن معروف به البیری چون نشعتش در شهر البیره بوده البیره یکی از شهرهای اسپانیا در اونجا به دنیا اومده بعدا رفته به غرناطه و دیگر شهرها برای کسب علم معروف بوده در علم قراءات و حفظ قرآن و همچنین در فقه شخصیت که شخصیت هایی که در اون برهز زمان بودن خیلی زیاد بودن از مهمترینش شیخش ابن عبی زمنین از علمای معروف اسمانی هست خوصا در فقه و در رسول و دیگر علما هم بودن که همعصلش بودن مثل گفتم ابن حز و ابن زیدون و ابن شهید ا میخونیم یکی از منظومه های البلبیری است یکی از منظومهاش منظومه های زیادی داره اینجا نصایحی هست که برای یکی از دوستای خودش ظاهره فرزندش نیست دارن دوستشه معروف به ابوبکر یاد میکنه دو جا در این منظومه خواهیم خون یاد میکنه ازش و خطابش به ابوبکر ماها هستی قبل از اون شخص در این منظومه ای که خواهیم خون یک مشکل اجتماعی که ماها داری از حب دنیا و از میاد درمانش میکنه از اون وابستگی به دنیا از اون له و لعب از اون سستی و تنبلی میاد اینها رو درمان بکنه با ابیات شعر با نصیحت چطور الله خواهیم گفت چی چی سبب میشه که انسان تنبل بشه چی چی سبب میشه که انسان سست بشه میاد اینجا مطرح میکنه خب یکی از چیزایی که محاسینی که توش هست فقط مجر مجرد دیدش اصلاح وضع اجتماعی خودشون نیست مسئله که خیلی مهمه دید و زاویه دیدش یکی از کارهایی که میکنه ملپیر اینه که میاد همت دوربریهای خودش از صلاو خودش رو بالا ببره برای احیای جهاد چرا جهاد برای اینکه مردم روز قیامت جلو الله رو سفیل باشن هموغم به خودش نداش هم غم مردم حساب و کتابشون داشت برخلاف اونهایی که دست از جهاد کشیده بودن دست از همه به دین کشیده بودن همه دین رو دیگه نداشتن دیگه, دیگه چسبیده بودن به دنیا و باغ و بستان و معروف بود اسپانیا به رودخانه هاش به بستان هاش به باغ هاش به میوه هاش هم معروفه اونجا که رفتن فتح کردن دیگه نشستن برای دنیا البیری دیگه چی شده اصلتون فراموش شد هدفتون فراموش شد بر بگردید سبحان الله این هم کمن از اشخاص که همیشه در زندگی سرلوشه شون بشه, سرمشقشون بشه. کمن. 80 اشخاص خیلی ها ما هدفمون از دعوات از طلب علمی که شروع میکنیم فراموش نکنیم وسط راه شیطان ما رو مشغول میکنه ما رو میدوزه فکرمون عقلمون فهممون رو میدوزه شیطان الله جل وعلا در قرآن برای روشنهی ذهن ما فهم ما مثالها را رو ما میزنه تا هدفمون رو گم نکنیم قران رو خوندید تو خودت گم نمیشی شیطان تو رو نمیدوزه یکی از فواید قران الله جل وعلا اینو نگاه الله برای درس عبرت بهمون از دعای زکریا چی میگه از دعای زکریا میگه ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین شما دارت كتبت تفسیرو بوز بکنی ربی لا تذرنی فردا بار الله مرا یا حتی ترجمه فارسی یا دیگر تفاسیر من بخونید بربی فر نداره اون چیزی که یاد میکنه چیه اینجا زکریا از الله میخواد که مرا تنها نگذار نسلی از من به جا بمونه نسلی داشته باشه فرزندی داشته باشه بفهم این درک از این دعا اشتباه تنها همش این نبود چون آیه را باید کامل بخونی تا بفهمی که مقصدش از فرد چیه داره دعوت میده قومش همه غم قومش رو داره بار الها بار الها ربی لا تذرنی فردا بالا عمر تنها قرار نده در دعوت تنها نباشم چرا گفتیم دعوت این قید دعوت رو قرار دادیم نه حب نفس حب خودش دید و زاویه البیری همه مردم رو گفتیم داره نه همه خودش تنها اینجا هم زکریه هست الگو و اسوه ما هست تنها همه خودش نداره بلکه همه مردم رو داره همه نجاتشون رو داره چی گفت و انت بار الله خیر الوارفی بهترینی خیر تو خیر را انتخاب میکنی در به جای مانده ها در اون چیزی که از ما به جا میمونه بهترین ها برای خلق و بودن بودن گران بودن بار الله ها بعد از منم از نسل من یکی از اون بهترین ها برای دعوت مردم برای خیرخواهی مردم قرار بده خیر الوارفی نه مجرد ارس یک کسی بیاد از من ارث ببره و یک کسی فرزندی بیاد از من به جای بمونه نه هم غم دین الله رو جل و داره بس هممون باچی با چی باشه؟ دین الله جل و خیرخواه دین الله جل و باش. باشی بغاطر این این هم ضعیف شده بود هر ازگاهی در اون اسپانیا ها میبینیم کسانی بر علیه حکومت بلیومی قیام میکردن مثل عامری ها در همون بره از زمانی که ملبیری زنده بودند قیام میکنن عامری ها و دیگر تواف یک وضع سیاسی سختی بود همیشه هم علماء در اون بره از زمان سخت ساخته میشن پخته میشن از خودشون اثر به جا میذارن شما در اوج از رفتن حکومت بنی که بعد عباسی ها اومده شما نگاه بکنی کی دارید مالک دارید ابو حنیفه و غزای و سفیانین و, و غیر در اوج اختلافات امام محمد امام شافعی در اوج قدرت معتزله و حکومت مامون و واسیغ و معتسم اونجا علماء دست به قلم برمی‌دارن و رشد علمی بیشتر میشه همیشه مشکلات برای این نیست که تو سرشکسته بشی بلکه الله جل و علا میخواد تو سرت محکم بالا بیاری سفت و سخت نیستی هدف از مشکلات اینه تو زیده بشی الله نمیخواد تو رو خار و زلیلی بکنه الله میخواد تو قدر دینه. تو اگر مشکلات نمید ما قدر دینش دین رو قدر دینی الله را نمیدونست در این برهز زمانی که مبوزحاق البیری در اسپانیا بودن وزرایی هم که حکومت اسپانیا در اونجا اندولوس داشتن بعضی از اونها یهود بودن که خصومت سختم با البیری داشتن که الله انشالله حالا نایش رو که میخونیم میدونیم یعنی از چی بیناله رنجشش از چی امبیری چی شده بر سر جامعه چی شده بر سر مجتمع اون درد و رنجش را اینجا در این خطابش ابراز میکنه خصوصا اینجا الا اون چیزایی که تو مشکلات اجتماعی که امروزه هم ما داریم اون دردی رنجی که ازش یاد میکنه از حب دنیا حب مال و چسبیدن به دنیا و دور شدن از جهاد و اینا درد و رنجایی هست که حالا در این بیات خواهیم خوند و ان شاء الله که پند و اندرزی باشه و درس عبرتی باشه برای ما خب خیلی ها از البرسی سخن گفتن سخن به میان آوردن و از اونها ابن العبار در تکمله جلد 1 صفحه 137 در مورد ابوحساق چینی میگه که من ان شاء الله ختم بحثم در مورد ابوحساق البيري خواهم گفت میگه که لقد كان ابوحسق البيري فقيها عالما ابوحسق البيري فقيها بود عالم حذر و اندرز و دعى الناس مردم را حشدار میده انذار میده و دعوت میده الى نقد الذاتی والعودت الى طریق الله میاد حشدار میده انذار میده بر اینکه مردم بر بگردن به توسوی الله و دعوتش بعیدن عن الاسرافی ملاذ الدنیا الزائله و اینکه دور بشن از اسراف و زیاد روی در امر دنیاشو اون دنیای پست ملعون و دعا الاما حاربت العدوی والوقوف صفا واحدا و دعوت من در مردم را بسویه اینکه یک صف وشن در مقابل وكان تركيزه على ذم الدنيا مناسبا للاحوال الاجتماعية في زمان اضطربت المعايير فيه همش ركيزه در دعوتش مذموم شمردن دنیا بود پس شمردل دنیا بود مردم را در اون حالت اجتماعی سختی که درش زندگی میکردن در اون وابستگی به دنیا و کسبیدن به دنیا دعوتشون میداد به سوی اخرت و به الله و وانغمس الناس في دنیاهم من كان ذا مال فانه يطلب المزيد ويصرف في الشهوات خوسن اونجا هم مشهور بود زنان رقاصه و خوس از اون کنیزان در اون قصرها معروف بود ان اونجا در اسپانیا به دف زدن نمیدونم خوسن ابن حزم هم کتاب می‌نویسه در دفاع از معازف حدیث بخاری را تذریک می‌کنه چون جامع و موحیت اینطوری بود برای خودشون رقاصه ها داشتن خواننده ها داشتن زنان آوازخون داشتن معروف بودند بری ما این چیزا مبارزه میکنه و ابیات اولش هم همینه عبیات اول از این منظومه که قایم خوندم همینه اینا همه هوا و هوسه شهوته تحذير میده از شوشزار میده و من قصرت حاله جعل همه في دنیا يصيبها على اي حال و من هنا كان زهد البری وتزهيده الناس و ذمه للدنيا هو محاولة صارخ للتعديل الكفه المرجوحه مع الاخرى الراجحة تان فقط زهد نبود بلکه هدف و همم البری این بود که مردم به خودشون بر بگردن و اون آخرتی که فراموش بشه زنده بشه در ظاهرش چون آخرت مردم فراموش میکنن خصوصا وقتی که در دنیا واسه میشه کار کاسبی وقتی که باز میشه و پولم عزیز شیرین الله تبارک در مورد پول و تحبون المال حبان جمع و انه لحب الخير شريد شیطان شیرینش کرده و ما هم شیطانو اون چیزی که شیطان هم شیرینش کرده دوست داریم هر دو تا رو دوست داریم نه هم پول همون شیطانی که داره و پسمون میکنیم که رفیقمون شده و دوست داریم این رفیق خ و ذمون هر مجلسی هم رفتیم هر به پول می حرف دنیا و حرف آخرت که دیگه نیست تو مجالس مردم هست؟ قایبه چه کار بکنن چه کاسیبی بکنن چه سرمای گذاری بکنن از چه راه پول در نشستهن و چی چیزی زدید اومده چه موبایل جدیدیه؟ چه نمیدونم ماشین جدیدیه هم بچه بدبخت سه چهار پنج ساله هم ماشینا رو میدونه این ماشین پژو این ماشین نمیدونم فلان از بس که ما گفتیم تو مجلس این نشانه چیه نشانه زحف ما در دعوت ما کار نکردیم ما هم آلوده شدیم به حب دنیا و غفلت از آخرت ما هم این چیزی که الله جل و از باب گلایه میگه سرزنش میگه اون حب المال در ما هم اومد زیل للناس حب و شهوات شیطانم زیباش کرده شیرینش کرده قرآن که نمیخونیم که بخوام بیام درمانش بکنیم این مرزا درده مریضیه در سوره کهف مثالی دارید برای این قضیه این درد این فتنه المال والبنون زیوان قشنگن و فتنه ابتلات در این ماله چهار تا فتنه در سوره کهف ما داریم چی داریم؟ اولین فتنه فتنه در دیل جوانه شما جوانا جرم شدید اینجا حب دین رو جوان داره نه اون پیر مردی که رو برای دنیاش داده و اون دنیا زیر ذهنش شیرین شده جوانش هماداره داره و می خیر و شرش فتن در دینه جوان ها هستن که دین را برپا میدارن همونطور که صحابی رسولالله صلی الله علیه و جوان بودن اونها بودن که دین را زنده کرده بعد فتن در چی داشتیم در که در مال اون دو نفری که باغ بود ساده فتن نست این یکی مفتوش شد با خاطر اون چشمها و با خاطر اون میوه هایی که داشت الله جل و علا اون ناز و نعمت رازیش گرفت چون آخرت را قبول نداشت دیگه اصلا به فکر آخرت هم نبود اونم برادرش یا اون دوستش بهش گوشزد میکنه پیو آخرت باش اینا نمیمونه میره دنیا رفتنیه میخوای جمع بجنگین که برای چی میخوایم بجنگین و بعدم الله جل و علا در سوره کاف چی رو میعرفد نه علم بحث مسابقه که ان در ضمن درس به اشاره خواهیم کرد و بعدم آخرش هم فتنه حکم قدرت این چهار تا فتنه است که ما دست و پنجه باش با نرم میکنیم ولی خب بیشتر فتنه ای که الان درش هستیم فتنه چیه فتنه مال که اینجا ابوسحق البیری بهش اشاره میکنن و به عنوان یک رنج و رنجش ازش یاد میکنن در این قصیده ما میبینیم که البیری ابوبکر که سرزنشش میکنه یک ابوبکر نامی ظاهرا اینطوریه که از بچگی با همدیگه بزرگ شدن چنانچه در این ابیات ما لمسش در زبن عبیات میبینیم که بحث حضوظ نفسانی میشه بحث سرزنش انسانه بر خودش بحث اشتباهات و بحث خشوع خضوع اینا در ضمن این ابیات خواهیم داشت ما عبیاتی که داریم تقریبا 115 تا و حالا گفته شه 112 تا بر چه اساسی خواهیم گفت تقریبا 115 تا بیته عبیات اولش از یک تا پنجش بحث غفلت انسانه عبیات 6 تا دهش بحث ابوبکر رو میکنه و بحث توصیهش به طلب علم عبیات 11 تا 19ش بحث علم و شیرینیش رو میکنه و بعد از اون عبیات 20 تا 27ش بحث عمل و دوری از جهر رو میکنه عبیات 28 تا 44 بحث دنیا رو میکنه و دنیا دوستان اونهایی که دنیا رو بر علم ترجیح میدن خوصا برای مایی که اینجا حضور پیدا کردیم مهمه و بعد از اونم در مورد دنیا باز دوباره بر می یاد میکنه و از اون ذلتش از اون پسی دنیا میگه خوصاً ابیات 45 تا 54 و بعد از اون عبیات 55 تا 60 در مورد توبه و رجوع به الله صحبت میکنه 61 تا 65 از اون عبیات در مورد عجله کردن در توبه صحبت میکنه و بعد 66 تا 69 از این عبیات منظومه خودش رو مثال میزنه و از خودش صحبت میکنه و بعد از اون از ابیات 70 به بعد تا یک دوباره شروع میکنه خطابش به ابو بک و حشدارش میده از حب دنیا و فراموشی آخرت دیگه بحث حساب و کتاب میکنه تا میره به بحث انسان و تقصیرش به درگاه الهی خوصاً عبیات 97 تا 99 نسائح اخلاقی داره و بحث رفقای بعد رفقای که انسان را آغشته به حب دنیا میکنن آلوده به دنیا میکنن دنیا آلوده است یعنی چه آلوده است؟ دنیا چقدر زیبا میبینی دنیا زیبا هست در منظر اون کسی که دنیا دوسته ولی کسی که اخرت را دوست داره و همونقامیش اخرت این دنیا براش عزیز نیست به دلش دوست نیست این دنیا نمیخواد نه قصرش براش عزیز نیست چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایان الدنيا ملعونه ملعون ما فيها الا ذکر الله و مولا او عالما يعني شي ملعونه ملعونه يعني مطروده رحمه الله يعني خير ورحمه توش نيست الله بغزه شو دار دوسه شي دار لو كانت الدنيا تزن عند الله جناحه بعوض يعني ما تزن عند الله جناحه بعوض ارزش يقبل بشر ان الله لما ساق منها كافر وشربته ما ارزش توت كافرش اب نبيدار بري الله جل وعلا دنيا شي ملعونه فاسته ولي بري ماجي عزيز شيرين خوش حاضر كاس كاسبي شو بزن به دين الله جل وعلا سالی که تو این محفلا تو این جمع ما هستن حضور پیدا کردن هم تشکر ازشون داریم هم از باب مشگانی نیاز است که بعض از حدیث را ما برای خود و مرور بکنیم زمانی که قدم برای الله جلو ال برمی داریم این دومین حدیثی است که على خصوص دارم بش حدیث زیاد اشاره کردیم و بعد از اون حدیث بقره این دومین حدیث که من توصیه میکنم مد نظرتون همیشه قرار بودین و الله الله عليه وس می فرمایان ان الله ملائه شیه حينفللم برای الله. فرشتگانی هستن این فرشتگانی الله گذاشته خاص سیاحی سیاحت میکنه میرن بروی زمین فضلا عن کتاب الناس فکر نکنید که همون نایی که همون که دارن منویسن اینجا عمالمون نا نا نا فضلا غیر از اون فرشتگان بقیه این ها فرشتگان خاص ذکر علما دینا حلقات علما این للهی برای الله خاص برای الله فرشتگانی خاص مخصوص عزيز نسأل الله جل وعلا بري بندقونا عزيز الله جل وعلا كم بندقونا عزيز الله كين كين فرشت عزيزي انتخاب شدن ده إن لله ملاك سيحين في الأرفض عن كتابنا يلتمسون أهل الذكر تنبول أهل الذكر فاذا وجد قوما يذكرون الله تنادوا هلوم إلى بغيتكم زمانك ميرا مبينان جيحة لقي علمية زكريا بينجاب بشت كنجاء علم درب دراسة مشي هلوم ندانی که میان در روایات دیگه حدیث دیگه داریم و ان الملائکه لتضع لطالب التضع هذا یعنی بالهای خودشون زیر پای اون طالب الفارش میکنه غیر از اون احادیثی که داریم که فرشتگان در آسمان و مائیها در دریا براش طلب مغفرت میکنن هلم از خوشحالی این فرشتگانی که الان حلقه علم رو دیدن حلقه ذکر رو دیدن الله نزد خودش عزیز قرار داده برای الله جل وعلا بر روی زمین جا درن دنبال می‌گردند که مژدگانی را به الله بدن خوشحالا و مژدگانی می دیگر فرشتگان هلوم مژدگانی درمیان فرشتگان بقیه بیایید فی یجیون فیحفون بهم ال میان میون گرداگرده اونها میشینن تا اسوات چون چند تا حدیث دیگه داریم ما من قوم یجلسون فی اذکرون الله الا وحفتهم الملائکه وغشیتهم الرحمه ونزلت عليهم السکینه سکینه نازل میشه و ارمش نازل میشه فرشتگان گرداگردشون حلقه میزنن فيقول الله خطاب ایم فرشتگانی که الان ایم مجدگانی رو دارن میدن و فرشتگان بقیه میگن بیایید اینجا حلقه علم دین یاد الله الله به اونها خطاب قرار میده میگه ایو شیئی ترکتون عبادی اصنعون چیکو میگه داشتم میکردم بندگانی که رهاشون کرده چی چی داشتن میکردن یعنی ویقولون ترکناهم يمجدونك ويذكرونك ويحمدونك نور راهو کردی در حالی اونها رو دیدی که دارن یادتو میگن بوزرغازة ياد ميكونان تروه شكر و سفاس ميقان الله جل و الله خطابنا ميقان فيقول الله عز وجل فهل رأوني ميقان مروا ديدان فيقولوا لا فرشتقوا ميقان نا فيقولوا فكيف لو رأوني اقام مروا مي ديدان چه مي شد فيقولوا فأي في شي يطلبون چه مي خان انا براي چينش هستان براي چه مدان حلقة زادان فيقولون يطلبون الجنة بهش رمي قال فيقولون يطلبون الجنة بيشرمي خان فيقول الله عز وجل فكيف لو راوها بيش بنديدن ميخان اگر ميديدن شي ميشود فيقول اني اشهدكم بعد از ان الحديث ادامه داره بعد از اون قصص اصلا ميفرمايت فيقول اني اشهدكم أني قد غفرت لهم اشهدكم كوهو اشهد فرشتي قبيكه انهايي كه براي من جم شدن گناهانشونو بخشيدن هلا جالبيه حديث فقط اينجا نيست ادامهي حديث ربو خوندن جالب تره قال فيقولون فإن منهم فلان الخطاء يكي هست بانشون غزينا نيست خطا كاره وما تفعله خبسطين حلقه حلقه علم حضور فیدا کرده لم يوردهم انما جاء لحاجة قصشم علم بده حاجتي داشته وما ده شركات شركت کرده فيا الله عز وجل جلی هم القوم اذا روات دیگر هم دارين با لفز هم الجلساء انها بهترین جلساء هستن نزل الله جل و علا بهترین حلقات هستن نزل الله جل و بشه الله جل وعلا عزیزان بهترین حلقه‌ای که بر روی زمین بهترین کسانی که با هم دیگه جمع شدن هم الق اینها قومن اینها عزیزان از الله جل وعلا هم الق لا شقى بهم به خاطر اینها این شقی نمیشه این این نفر این نفر اینکه اومده برای حاجات لا شقى بهم جلیسه و فرشته گم بیان خب این اهلین جمع نبود یعنی این لیاقت اون جمع رو نداشت برای اون ذکر و یاد الله الله میگه به برکت اینم میبخشم اینم شقی نمیشه باز من اینم سعید چخه بن باز رحم الله میگه صحبته اخیار و مجلسته من اسباب مغفره نقاوت بگید بگه رفیق خوب گرفتن و با خوبان هم صحبت شده از سبب مغفرت گناهانه از اهل علم بود اومده بود بستی اینها ولی همصحبتی این با این جمع الا تاجر بوده کاسب بوده هر کسی بوده به خاطر اهل علم رو دوست داشت به خاطر اینکه تو اون جمع شرکت الله اون هم را میبخشه یعنی وقتی که هم صحبتت خوب باشه تو هم خدا میبخشه خیر و برکت علم خیر و برکت علم سبب بخشش و کفاره گناهانه وقتی که الله جل والا میگه ذروات دیگه میگه میگه له قد غفرت اونام بخشیدم این همونطوری که علما میگن میگن این مبالغه در بخششه در نفی شقاوتمندی از اون شخص پس این حدیث مرا ارشاد میکنه به اینکه اهل ذک باشی و کسانی که برای خودمون هم صحبت قرار میدیم نیکان باشن خوبان باشن با بدان ننشینیم رفیق بد نداشته باشیم رفیق بد مثل موبایل مثل اینستاگرام و برنامه دیگری که توی موبایله رفیق بد تو رو آلوده میکنه فکر نکن این رفیق نیست والله این از رفیق میشه عزیزتره حاضر پیش رفیق موبایل رو دست بگیری ولی باش حرف نزنی نگاهش هم نکنید همونطور که الان میبینید تو جمع نشستن، این موبایل پیششون عزیزسر از اون جمع اخوته با این برادری با این موبایل برقرار کرده. للاسف بجای اینکه این موبایل بشه وسیله برای دعوت، برای نشر دین، این موبایل شده وسیله برای همصحبتی و رفاقت و دوستی، حتی بچه کوچک رو هم کاری کردیم که این موبایل پیشش عزیز بشه. ازش بگیری داد و بیداد میکنه. از بس که پدر مادر مادرم دست گرفتن این گوشی به دست، اون بچه هم دوست داره که این موبایل به دست بگیره. بچه کوچیکه 2 3 سالشه ولی موبایل دستش. این موبایل رو عزیز نکنید. این رفیق بده. دوبره رفیقی برگرد که سبب مغفرت گناهانت بشه. سبب کفاره گناهانت بشه. چنانچه اینجا شما در این حدیث داشتید. رفیق خوب سبب کفاره گناهانت بشه. سبب مغفرت گناهات بشه. سبب عزیز شدنت میشه پیش الله جل و علا. انشاءالله سنه بر دین الله جل و علا و گرد همایی برای دین الله جل و علا سبب میشه که الله جل و علا برات فرشتگان خاصی که گذاشته بفرسته. و اون هم صدا بزنن هم دیگر را صدا بزنن مجدگانی بدن برای اون حلقه‌ای که تو درش نشستی این فضل عظمت حلقات علم و مدارسه علم شما اگر نگاه بکنید به این ابیات که خواهیم خوند، البیری در هیچ کدوم از این ابیات از خودش دفاع نمی کنه شعری میگه ابنو بکنام بر علیه بیری بیری از خودش دفاعی نمی کنه تو این ابیات یک بلکه خودش را مزمت میکنه سرزنش میکنه سبحان الله امت که شیخ عبدالرزاق عباد در شرح این ابيات میگن میگن که خیلی عجیبه یعنی انسان از خودش دفاع نکنه وقتی که مثلا کسی ازش بدی بیاد بکنه بعد نیازی از خودش دفاع بکنه میگه کجا پیدا میشه یکی از ما ناراحت نشه بس وقتی کسی ازش انتقاد بکنه بعد بیاد به خوبی هم اون رو نصیحت بکنه تا میگه قشنگ شما این تضیه رو در این ابيات میبینید سبحان الله واقعا من تضیه یک جوهر گرانبهاییه که خیلی قدرش رو نمیدونن در نفس انسان که میتونن اون نفس بندگان سیقلش بدن عوضش بکنن میتونن این قلبی که این جوهری که الله جل و علا در ذات تو قرار داده که باهاش بفهمی باهاش ارتباط برقرار بکنی این قلبه با ارزش بشه گرانبها بشه ما بی ارزشش میکنیم با غیبت با نمامی با خبرچینی با بدی این قلب این جوهری که در سینه تو الله جل و علا قرار داده تو میتونی گرانش بکنی مثلا من به عنوان مثال میگم اینجا رسول الله در زبن بحث بششاره خواهیم کرد الله جل وعلا میگه خطاب به رسول الله صلی الله علیه و اسلام میگه که الم نشرح لك صدرك ما انشرح صدرنا یعنی چی انشراح صدر تصور داشته باش الله جل وعلا مثلا این تصویر رو چطور به در قران نمایان میکنه از این انشراح صدر به طور الله خالص رب اشرح لي صدري اینجا هم الله جل وعلا رسول الله میگه ما هم صدرات رو منشر قرار دادیم خب چطور یعنی بر بگردی به سوره یوسف و این انشراح را آنجا ببینید این چیزی که الان شما میبینید در بیری انشراح السد در مقابل خفص برادران یوسف دهتن که از همسر اول پدرشون بود یعقوب علیه الصلاه و السلام خصومت داشتن با یوسف یا نه چیکارش کرده تو چه انداخته بعد فروخته شد بعد زندانی شد از کجا شروع شد از اون برادران و خصومتش و دشمنیش این برادرها جنب میشن بعد میون تروش میگن ان یسرق فقط سرقه له اخ من قبل هر قبل یامین اینجا دوزی کرده یوسف برادرش از قبل دوز بوده الله جل وعلا درباره ی یوسف علیه السلام میگه ان شراحه الصدر ايش دار مقابل ال خصوم و دشمنانش که نازیره دست شدن به گدایی اومدن با فقر و ذلت و خاری اومدن پیشش دارن گدایی میکنن الله جل وعلا چی میگه در مقابل یوسف فاسرها یوسف فی نفسه ولم يبدها لهم ابرازم نمیکنه کرمه این چقا حس دشمنت خسم زیر دستتم به گردایی اومدن تو هم میتونن آن سرنگونشون بکنی میتونی آبروشو رو ببری ولی هیچ کدوم از اینشون نداداریش تو این بیات نه از خودش دفاع میکنه و نه خسمش رو تحقیر میکنه. اصلا بعد نصیحتش میکنه همت آخرت باشه برادر حب این دنیا رو نداشته باش بیا بشین پای حلقات علم این علم تو نجات میده همش نصیحتش میکنه. خیقاشه خیر خواهد دشمنشه. خیرخواه دشمنشه مثل اینجاست یوسف علیه الصلاه و السلام جالبیه قصه فقط اینجا نیست یعنی شما انتهای قصه شما اگر نگاه کنید قصه او یی سدش اونجایی که الله جل و اعلی او را برفع اوه ای علی العرش نه اینکه فقط یوسف اون مشکلاتی که بهش پیش میاد به چش نداره مشکلات به چش نداره این سر سعادت بحث البری بهش اشاره میکنه سر خوشبختی خدا را خوب دیدن این کلید خوشبختی اگر میخوای خوشبخت باشی خدا را خوب بیبی بی. چی میگه وقتی که اونجا پدرش رو بر روی عرش میاره میگه وقد احسن بی یعنی الله جل وعلا اذ اخرجني من السجن الله در حق من خیلی خوب بود مرا اینجا کشونده مرا از زندان آزاد کرد یعنی لیاقت خودش اون زندان میبینه اون سختی میبینه ولی کل الله جل وعلا چیکار کرد مرا اکرام کرد اینجا کشوند الله مرا اینجا کشوند الله مرا به اینجا آورد اون برادرا سبب شدن من اینجا باشم اون قسمت من به خیر خوبی بود بد نبود الله بد هم نخواسته بود شما هم برادران در حق من بد نرید وجاء بكم من البدر یعنی خوشحال هم که شما از اون بادی اومدی پیش من اساس خوشحالی میکنی در مقابل جی برادرانش شما هم پشت من آوردن این مشکلات سبب شد که ما به هم دیگه نزدیک بشیم این چیه الم نشرح لك صدرك و نرى باغوش میگیره بد کیرا ملامت میکنه من بعد النزغه شیطانو بینی بین اخواتی الله اکبر تو نگاه بکن اینجا اول از که شروع میکنه از خودش شیطان من را اول دوچار نزغات کرد بعد نزغ شیطان را بی من منم در امان نبودم از شر شیطان منم دوچار نزغات کرد و شما را هم همینطور طوب تو زمین که انداخته اول تو زمین خودش کی را ملمت میکنه شیطان کی را تبره میکنه برادران خوبته برادریه الله دیست داره که ماها لله کنا را هم دیگر باشیم نذاریم نزغات شیطان ما را هم دیگر دور بکنه دوچار اون مریضی حب نفس و حب ذات بکنه که خودمان را نصرت بدیم و جمع اون را به هم بزنیم و دامن بزنیم به اختلافات و به خوصا اون اختلافات سلیقه و به اون چیزهای ناچیست دامن بزنیم شیطان والله حریصه در این که جمع اون را به هم بزنیم و خوبت و برادری ما را از ب ما ها يار و يار شيطان نباشیم لأن هذه الخوفة بشه والله دارم بيگن چنانچه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرموين انهايك قدر و خوفة و برادرين لله رب ميندونن چه بيگه رسول الله صلى الله عليه وسلم متحاببين في الله جاشون جاس؟ الله جل وعلا در روز قيامت منبري در بهشت قرار میده در روز قيامة در بهشتش منبري براي انهايك چه المتحاببين في الله المتبادلين فيه اونهایی که بل میکنن اونهایی که از خود گذشتگی میکنن برای حفظ خت و برادری اونهایی که لله همدیگه را دوست دارن و جمع میشن الله و الان میگه اون که لله همدیگر را زیارت میکنن با همدیگر میشن و یغبت و مهم نبیود وصددیق غه میکنن با اون مجلسشون جایگاهشون در بهش اون نخبتتی که چی؟ با حشر راه صدرششون و نخبتشون رو حفظ کردند. غبته میکنن پیغمبران و سه به اون برادران قدر این برادری رو بده. چه بدارید تنید و چه دینید؟ سعی بکن که اون شیطان رو دور بکنی از زندگی خودت و و حفظ بکنی اون و خواتت این مقدمه بود قبل از شروع عبیات این منظومه چه خبی رضاق عباد الله حفظش بکنه در شرح این عبیات میگه میگه که بعضی ها گفتن که خطاب ملبری در این عبیات خطاب پسرش بوده ولی میگه این نادرسته چون خودش میگه که عبا کشفتا قلعي واكثره معظمه سترته ابا بکر كتب ابا بکر فرزندی به اسم ابک نداشه اب بک کسی یک فردی از دوستای رفاقتش کهinja یاد ازش میکنه و خودش هم میگه و کنت معصبا اهدى سبیلا میگه تو در وقتی که بچه بودی با هم بودیم بهتر از این بودی چرا الان اینطوری شدی و بعد میاد از اون عیب های او یاد میکنه از اون تقصیراتش اون دوستش که فرزندش نیست یعنی اینجا بخواد فرزندش اینطوری ملامت بکنه که چون معمولا انسان ذلات اشتباهات فرزند شماره ولی که از باب نصیحت البته ولی که اینجا دوست رفیقه که میدونه براش آشکاره اینجا هست که در این ابیات میاد نصیحتش میکنه و توصیه و پند اندرزش میده یک مسئله ای که هست در این ابیات و اونم این که این ابیات بهمون اخلاق یاد میده و اهل علم مسموم ابن عبد البر و اهمشين امام خطيب بغدادي كتاب دارن براي طلاب علم كه اخلاق بهشون ياد بدن همدن احاديث رسول الله صلي الله عليه وسلم جاموري كردن در اين كتاب ها كتاب ها نوشتن در محدث چه آداب طالب علم كه علم بواد اين قصن دو كتاب امام اين دو تا امامي كه يادگريم بغدادي طالب علم بواد بخونه رفيقش باشه اذا اخلاق خیلی مهمه همونطور که شیخ البانی بهش توصیه میکنن خطیب بغدادی هم همینطور امام مالک هم همینطور میگن قبل از علم ادب یاد بگیر و توصیه مادر امام مالک به مالک هم همین بود که قبل از اینکه علم رو بیابی اول اخلاق رو یاد بگیر اخلاق تعامل خیلی مهمه ما هستی که با اخلاقمون سبب میشه مثل یوسف علیه الصلاه و السلام برادران توبه بکنن به اشتباهشون پی ببرن یوسف علیه الصلاه و السلام میتونست انتقام بگیره میتونست سبب بشه که اونها محروم بشن از هدایت ولیکن همون یوسف و اون اخلاق و کرمش سبب شد که برادران هدایت بشن ابتدای قصه سخت بود ولی انتهای قصه زیباس اون زمانی که به اشتباهشون پی میبرن هدف اینه که ما اشتباهمون پی ببریم هدف اینه که ما گذشت داشته باشیم اینها درس عبرتا هست دامن به اختلافات نزنیم حسین اختلافات سلیقه حسین تو یک مرکزی که مثل اینجا هست قرار بر این نیست که سلیقه ها یکی باشه قرار بر این نیست که ون چیزی که ما میگیم به کرسی کشونده بشه اختلاف سلیقه ها هست حسین مدیر ناظم طالب بعد از راه حسادت داشته باشیم حالا یک قسمتش عفو بخشش داشته باشیم باید برادرمون را قوی بکنیم کنارش باشیم یارش باشیم نبارش الله جل و علا از باب نزدیکی به مصتشین میگه بازو تو قوی میکنین با برادرت تو بار نباش، یار باش. بازور رو قوی کن، نخسه. قصه میشه از بس انتقاد میشنوه. اینا اینجا کمکاریه، این نمیدونم اینجا کولر آب میده، اینجا نمیدونم چراغ سوخته، اینجا نمیدونم. تا کی میخواین انتقاد بکنین؟ خب یا چراغ تو عوض کن، کولر رو بیا تو اصلاح کن. بار رو همیشه به دوش دیگه را نینداز. اینقدر انتقاد نکن انگار که تو فرشته‌ای هستی که از آسمان افتادی اومدی بر روی زمین. اینها خیلی مهمه در بحث حفظ بر حفظ اخو در نشر دین و خیرخواهی برای خودمون و برای دیگران. اینا همه هستوسیهایی که ما باید قبل از این که در حلقه علم بشینیم باید خودمون رو بهش گوشزد بکنیم ما برای این دنیا نیومدیم هدفمون باید اخرت باشه حب این دنیا بر ما چیره نشه غلبه نکنه اینا گفتم توصیه است که همه علما داشته اثر لوحی حضورتون در حلقات علم این باشه که چی الله جل وعلا میگه لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه برای شما رسول اساس الگویی نگ الگویی در تهجد الگوی نیک در پایبندی بر طاعت و عبادت الگوی در تعامل عربی قشمی گیره ولی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نمیذاره کسی به اون عربی نزدیک بشه چه در حفظ خشاوندی و صله رحم چه در عیادت بر حتی یعنی عیادت و زیارت رفقای همسرش خدیجه بعد از وفات خدیجه بسه وفاداری، بحث تعاملش، با همسرش، با فرزندانش، با فاطمه بلند میشود برای دخترش، دخترشو میبوزید. اینا چیه؟ اخلاق. نه رفتاره. اینها را باید یاد بگيری. طالب علم باید اخلاقش اخلاق نوبت باشه. اگر دیدی طالب علم پرخاش میکنه، ناسازمان میگه، فحش میده. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه مؤمن نیست بالطعان، ولا لعان، ولا البذي، ولا الفاحش. و دیدی بزیه هست. نزاکت سخن نداره. حرف زشت رو بر زبان میاره، ناسزا میگه، بدگویی میکنه، پرخاش میکنه، قرآن رو فقط تلاوت میگه الکاذمین الغیب، ولی که پر از غیظ اون رو میبینی؟ خشم، از ششاش داره میباره بدون که این از منهاج نبوت، از الگوگیری از رسول الله صلی الله علیه و سلم دور شده. اگر الگوی ما رسول الله صلی الله علیه و سلم، به رسول صلی الله علیه و سلم پوی بند باشیم، به با اون اخلاق، به اون آداب طب وانت عواملی کی رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتند یهودی بچه‌ش مریض میشه رساس میره به هناك تو مؤمن مریض تو نمیری به الله حدیث رسول الله, الله و فرد رغم ان فرجلا أدرك والدي او أحد والدي ولم يدخله الجنة حديث أسان ك... أكسي نه والله ما در دیوار بینی اون شخص مالیده بشه بر خاک پوزش به زمین مالیده بشه اون کسی که پدر مادرش زنده باشن او را یا یکی از اونها و او را وارد بهش نکر یعنی چی یعنی اگر تو طالب علم بدی کردی پدر مادرش مادرت بد رفتار کردی سبب نشدن با بر خوبی وجود و خوبیت اونها سبب نشود که تو وارد بهش بشی والله تو محرومی حالا تو بیا طالب را ببین در تعاملش با پدر مادرش نه اینکه سبب نشده وارد بهش بشه بلکه خودش رو جهنمی کرده با اون پرخاشش با اون بدگویش خب تو برای برای چی اومدی قران رو حفظ کنی برای چی اومدی دین رو یاد بگیری اگر حب آخرت رو داری اگر حب نجات رو داری اگر میخواهی من بشی رو سفید بشی جلو الله جل و علا باید حرفا نور سر چش بذاری چون الله گفته من باید با انها خوب باشم و آنها وسیله ان برای ورود من به بهش من اون وسیله را حفظ می کنم ازش محافظت می کنم قدرش رو میدونم اونها را نعمت میدونم برای خودم پدر و مادر نعمتن زندگی اونها چون اونها وسیله منم برای ورود بهش الزم هما فإن الجنة تحت قدمیهما الزم هما بچس پدر و مادرت ملازمت داشته باشه رفاقت داشته باشه با اونها فان الجنه تحت قدميهم او كما قال عليه الصلاه والسلام بیش زیر پویون پدر و مادرت قدرشون بود حالا این یکی از اون جوانی به اخلاقی یا لغیر از برادران و خواهران که گفتیم بعد سیوسف کردیم غیر از اون برادرها و خوبت ایمانی کم انبه از نور در بهش الله جل و جلال برای برادران ایمانی قرار میده اینها من فزیلاتها هستن برای اینکه جام راه بسپوکنیم سبحان کنار بحمدک سبحان و بحمدالصلاة على محمد و لا محمد